بسم الله الرحمن الرحیم تقسیم بندی بحث ما از اونشی که در فست گذشته ما بیان کردیم تا به امروز این شکله بحث های پنج شنبه ما در حوزه اعتقادات در حوزه اعتقادات ما سه اصل رو بیان کردیم گفتیم اصل اول هستی شناسی است مقدمه این هستی شناسی سه بحث رو به طور مقدمی که خودشان بحثای مبسوطی بود و دقیق هم بود رو بیان کردم بحث اولش شناخت شناسی بود که یک تم فلسفی داشت بخش دومش انسان شناسی انسان شناسی بود و بخش سومش هم بحث دین شناسی که امروز هم اعتراف کنم با اینکه چند سال بود انسان اصلا خصیصه انسان اینه انسان با معصوم فرقش اینه که معصوم وقتی به پایان کار میرسه هیچ افسوسی نداره نمیگه کاش این کارو کرده بودم کاش که مثلا اینو بیشتر گفته بودم ولی آدم ها به خاطر اینکه موجودات کاملی نیستن همواره در زندگیشون افسوس دارن که ای کاش من اون رو بیشتر گفته بودم اون رو نگفته بودم اونم خصوص انسانی ما هستش. امروز اعتراف می که بحث انسان شناسی و بحث دین شناسی جای بیشتری برای گفتگو داره و شاید ان شاءالله در یک مقطعی به طور مستقل بهش بپردازم. اگر خدا بهم کمک بکنه در این زمینه. بعد که این سه بحث رو مطرح کردیم نفتیم توی بحث هستی شناسی. در بحث هستی شناسی در فصل گذشته دو بخش و مورد بررسی قرار دادیم. بخش اول خود خدا شناسی بود که خدا هست یا نیست اگر هست به چه دلیله اگر هست چه خصوصیاتی داره اینها رو بیان کردیم. و بخش دوم هستی شناسی در فست گذشته بحث از توحید بود و شرک نفی شرک و یه مقداری هم راجب اصمال حسنا صحبت کردیم و کردیم که بحث اصمال حسنا بحث تفسیری است دیگه بحث کلامی نیست در اونجا یه بخشی راجب اسم اعظم و اینگون امور هم مطالبی رو بیان کردیم اونها مطالب در جای خودش بسیار ارزن بعد رسیدیم به فصل جدید فصل جدید یعنی این که الان دوم جلسهش هستیم در فصل جدید از سلسله مباحث هستی شناسی سومین بخش رو دریم مطرح میکنیم سومین بخش بحث تبیین صفات الهی است و بعد که این صفات الهی تبیین شدن منجر میشه به بحث از عدل, عدل. خودش از صفات خداست باید طبیعی بشه در همون بحث صفات الهی اما معنای مستقل داره عنوان مستقل داره به خاطر اینکه خیلی تو زندگی های ما چی هستش دغدغه دق و ارز به حضورتون که ورود بیش از انداز... بیش از اندازه‌ای که نمیشه خب ورود تنگاتنگ تو زندگی ما داره از سلسله مباحث عدل از بحث قضا و قدر از سلسله مباحث عدل از بحث جبر و اختیار از سلسله مباحث عدل از ناتوانی ها و عش از سلسله مباحث عدل از بحث از شرور و این تیپ از بحث هایی که ما خیلی هم دامنگیره بسیاری در حوزه اعتقاد همه بحث عدله یعنی مردم که بحث برشون براشون جا بیفته به مدد حضرت حق بسیاری از شبهات براشون حله ولی خب چون خودش یه موضوع بل در واقع آمل بلواییه و تنگاتنگ در زندگی ما ورود دارد عنوان مستقل داره بلیه تحت انوان همون صفات الهی بادرش بحث بشه فرقی از صفات باجداری از صفات الهی نیست اما که توحیدم هم همینطوره توحیدم هم بحث از صفات الهیه اما اون هم یک سیطره بسیار مهمی تو زندگی ما داره از این جهت است که معنای مستقل بشه اقتصاص بودن به این شکل که قدما ها قدمای از بود کلمین علم کلام وقتی میگفتیم اصول دین پنج داست بعد میگفتن اصل اول چیه اونا میگفتن اصل اول توحیده یعنی انقدر مهم بود دارا که اصل اول توحید نیست اصل اول هستی شناسی است شما در دایره هستی شناسی به خدا شناسی بیرسید. در این خدا شناسی به توحید برسید ولی اونا به خاطر اهمیت توحید در حوزه اعتقادات ما که اگر انسان درست باور نداشته باشه ممکن است که از مرز موحدیت خارج بشه و به دایره مشرکین ورود پیدا بکنه به این میون از همه درست اصل اول توحید حالا بحث را. خواستم شکل بحث ترسیم بشه حالا که داریم راجب به صفات الهی صحبت می کنیم در جلسه گذشته این میزانه از بحث رو گفتیم که ما یک اسم داریم یک وصف داریم اسم اون واجه است برای دلالت بر ذات و ماهیت منعی سهیه یعنی بدون که به ویژگی ما اشاره کنیم اون ماهیت رو و اون عرض به که حقیقت رو مورد خطاب قرار میدیم و بهش اشاره میکنین و عزیزان میدونن که وقتی ما در مورد ذات عقدس اله راجع به ماهیت صحبت میکنیم همون مرام فلاسفه رو داریم ماهیتوه او، امیتوه ماهیت خداوند همون وجودشه و الا در بحثای فلسفی میگن ماهیت حد در نیست خدا درش عدم راه نداره اینکه که ما هم میدونیم ولی وقتی ماهیت به سلام از ذات حضرت عقد صحبت بکنیم و اسم دلالت بر ذات منحی سهیه میکنه یعنی بدون اینکه ویژگی رو بیان بکنه از ذات رو میگه اما وصف اون واجه است که دلالت بر ذات میکنه اما بیانگر یک کمالی از کمالات هم هست یه ویژگی رو هم در اون ذات چیکار میکنه به ما نشان میده رهنمون کننده ماست به یک وصفی به یک کمالی بنابراین میگن به این که اسم حضرت حق الله هست مستجمزات مستجمع جمعی کمالات به طور ما لایتناهی فوق لایتناه به طور مطلق اطلاق دارد در تمام استفاد کمالیه هر چی که بود است در زاد در قصه راه دارد ولی ما وقتی میگیم الله به هیچ کدوم از اون استفاد اشاره نمی کنیم فقط به زاد در قصر. حالا خداوند غیر از الله اسم دیگری هم دانه بر اساس همون که در متون دینی آمده گفتیم رحمان هم هست عده رحمان رو هم اسم ذات می دونن و اسم می دونن اساسا در مقابل اسم یا حالا در کنار اسم وصف هست وصف اونه است که دلالت بر ذات می کند اما بیانگره یک ویژگی هم هست بیانگر یک کماری هم هست وقتی بیانگر یک کمار شد این تقسیم بندی ما که صفات را به صفات سبوتیه و سلبیه تقسیم میکنیم و صفات سلبیه داری یه چیزی رو سلب میکنیم وقتی داری چیزی سلب میکنیم یعنی کمال اینجا وجود نداره این چجور رو سفت باشه بعد گفتیم که صفات سلبیه خودش بر گردد به صفات سبوتیه صفات سلبیه تعبیری که ما در جلسه گذشت داشتون یعنی یعنی همون یعنی هم صفات صوتیه که بعدش میاد ها تقسیم بندی های دیگه برای صفات از حق وجود داره که حائز دقت بین ها به خاطری که ممکنه شما مقالاتی رو بخونید ممکنه هست که شما مثلا فرض بفهمید کتاب های بخونید تحت ممکن که اتفاق بیفته بعد این در واقع از بزرگ که اصطلاحات رو ببینید و مثلا نتابعید از هم تفکیکش بدید و خب این استلاحات تخصصیه دیگه و شاید مثلا نیاز باشه که توضیح داده حال ما اینجا توضیح میدیم و سعی می بکنیم که آسانش بکنیم برخی از تقسیمات صفات خب پس شد صفات صبوتی و صفات سلمیه بازگشت گشت صفات سلبیه که به همون صفات ثبوتیه خودمون بنابراین این صفات ثبوتیه حضرت حق مقسم است و تقسیم شود به دو قسم صفت ذات و صفت فعل اوصاف حضرت حق اوصاف ذاتی هستند یا اوصاف چی هستند فعلی هستند اوصاف ذاتی یعنی چی؟ اوصاف فعلی یعنی چی؟ صفت ذاتی اول از روح من عبارت رو بخونم من چون از سیستم جدید استفاده نمی‌کنم، مجبورم که بعد کتاب عرض بحضورتون که ویجه رو هم نمیتونم به تو معرفی بخونم که <تصفح> مثلا فصل به صفات خدا این کتاب رو بخونی چون این کتابی که بشه همه حرفایی که ما داریم عرض بحضورتون که توش موجود باشه که نیست حالا باید کنیم که این کتاب در واقع این ما تموم بشه بعد انشاءالله تبدیل بشه به کتاب نسل بعد از شما خواستن میتونن به اون کتاب رجوع کنیم حالا ما از رو میخونیم و ببینیم توضیحش بدیم ببینید در صفت ذاتی با لحاظ یکی از کمالات خداوند از ذات الهی می شود و بر هم میشه به عبارت دیگر اگر برای انتزاع صفتی از ذات و وصف کردن ذات با آن وصف تصور ذات کافی باشد این صفت صفت ذاتی است. صفت ذاتی است. یه موقع که آقا شما میخوایید یک وصف وصف بس انتزاعی، یعنی باید شما از فرایندی این مطلب رو بگیرید. اخذش بکنید. وقتی شما میخواید یک وصفی رو انتظار بکنید گاه اینطوره که صرف اون ذات رو که تصور میکنید صرف خودش تصور میکنید اون بعد کمالی انتظار میشود شما میتونید اون بعد کمالی رو بر اون ذات چیکار بکنید؟ هم بکنید اگه ویژگی و صفتی این خصوصیت رو داشت که در انتزاعش در تصور کردنش مبتنی بود بر تصور صرف ذات و چیزی دیگری هم نمیخواست به این میگن صفت ذاتی حالا صفت فعلی رو که بگم اون توضیحاتش کامل میشه و در مقابل صفت فعلیه صفت فعلی زمانی انتظام میشه که اون ذات مشغول انجام کاری بشه یعنی باید لحاظ بشود محتوا نه به صرف ذات لحاظ بشود بلکه در زمانی که مشغول انجام کاریه وقتی در اون کار رو انجام میده شما ای صفت رو از اون چه کار انتظام بکنید به صفت فعلی حالا با این حساب وقتی شما میگید صفت ذاتی آن صفتی است که در انتظاعش فقط تصور ذات لازم است سوال میکنم یکی از صفات خدا صفت حیاته یعنی زنده بودن آیا این حیات در مورد خدا نیاز دارد که خدا مشغول کاری باشد تا من انتظارش بکنم یا اینکه نه فقط ذاتش که تصور بکنم حیات ازش چی بیشه؟ انتظامش قسلم بخش دوم میگه وقتی حیات رو بخوای انتظام کنید ذاتی که تصور بکنید کفایت میکنه. اما در مقابل این معنا صفت خالقیت خدا خالقه اگر خدا را بخواهید صفت خالقیت رو ازش انتظام بکنید صرف ذاتش کفایت نمی کند بلکه باید خلقی را انجام داده باشد یعنی یک کاری رو انجام داده باشه تایفه ای را خلق کرده باشد تا شما بگید وجود نازنینش چیست خالق است باید تایفه ای را روزی داده باشد تا شما بگویید ذات اقدسش چیست رزاق است بنابراین برای انتظای صفاتی مثل صفت خالقیت مثل رازقیت مثل قفاریت اگر خدا بخواد بخشنده باشه باید در زمانی بخشندگی لحاظ بشود که یک کسی گناهکار باشه که او رو ببخشه تا قفاریت لحاظ بشه لا وجه یعنی خدا باید یه بخششیرات داشته باشد تا چی بشه تا اون صفت انتذاب بشه یعنی صفت غفاریه خدا باید یک کاری رو بکنه یه عدی را مثلا فرض کنه توبه بکنن تا او هم بازگشت با سوی اونها داشته باشد توابیت درش معنا پیدا گو اینا همیشن صفت چا فعل بنابراین صفت فهر. فعل اون صفتی است که در انتظاش و حملش بر ذات علاوه بر تصور ذات باید او را در مقام اشتغال به یک فعل همچگار بکنیم قرارش بدیم اگر نداشته باشه نمیتونه انتظاش بکنیم خب اینجا دیگه معلوم معنای صفت ذاتی و صفت فعلی معلوم شد دیگه تفاوتش خیلی واضحه از فعل خدا انتظام میکنه میشه صفت فعلی از ذات خدا انتظام میکنه میشه صفت ذاتی از ذات خدا انتظام میکنه یعنی برای انتظام فقط تصور ذات کافیه وقتی میگه فعل خدا انتظام میکنه یعنی که برای تصور برای انتظام و فعل علاوه بر ذات اشتغال اون کار همشیا لازم است بر این اساس این تعریفی که ما گفتیم اراده خواستن خدا می خواهد. اراده جز صفات ذات یا صفات فعل جز صفات ذات یعنی ذاتی که تصور بکنه اراده برش هم بشه لازم نیست که کار دیگه ای انجام بده اما در مقابل تایفه از شخصیت های که سبقه حدیث درشون وجود دارد، هم محدث هستند صفت ذات رو جور دیگه ای تعریف میکنند صفت رو رجور دیگه ای تعریف می‌کنم بر اساس این تعریف فقط صفت اراده جا جابجا میشه بر معنای مشهور از علما اراده رو جز صفت چیا ذات چون برای انتزاعش صرف تصور ذات چیا کفایت بکنه. اما معنای دومی هم وجود داره معنای دوم اینه. میگن صفت فعل تعریف دیگه ایه پس تعریف اول که تعریف مشهور بود و چیکار کردیم؟ انجام دادیم گفتیم بر اساس تعریف مشهور صفت اراده جز صفات چیه ذات حالا تعریف دومی رو تعریف میکنن از صفت ذات و صفت فعل میگن صفت فعلی خدا چیه هر صفتی که بتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف کرد هر صفتی را که بتوان به مقابل و ضد اون خدا را وصف کرد این میشه صفت چی فعل و صفت ذات هر صفتی است که نتوان خدا را به مقابل و ضد آن چهار کرد وصف کرد حالا بر این اساس قدرت صفت فعل یا صفت زاده، بله صفت صفت چرا صفت فعل؟ اون صفت که خدا را به زدش بتونی وصف کنی صفت زاد، اون صفت است که خدا را به زدش نتوانی وصف کنی نتوانی وصف کنی, نتوانی وصف کنی. یعنی گره وصف کردید میشه عیز خدا خب قدرت صفت ذات میشه یا صفت فعل میشه نمیشه خدا رو به ضدش واس خدا که عاجز نیستش که علم صفت فعل میشه یا صفت ذات میشه چرا چون نمیشه خدا رو به ضد علم واس کرد میشه جهر. درست شو حیات که میشه در واقع بودن خدا رو میشه به ضدش واس کرد یا نمیشه واس کرد نمیشه واس کرد اما یک صفت هستش که میشود خدا را به او و به ضدش واس کرد با اون صفت صفت چیه؟ اراده خدا یرید و ما یرید هم می در مقام اراده قرار بگیرد و هم می در مقام اراده قرار نگیرد یرید و عدلن ما یرید و زلمن. خدا اراده ظلم ندارد ولی اراده عدل دارد پس شما اراده رو هم یوریدو و هم ما یرید رو به خدا چکار بکنید در واقع حملش بکنید و صفت فر اون صفتی بود که بتوان خدا را هم بهش و هم به ضدش در واقع وصف کرد مادا میگه اون ضدش چیز نی ها صفت عجزی نباشه بر این تعریف دوم اراده میشه جز صفات چی؟ ف؟ دارن تعریف اول اراده میشه جزء صفات چیه ها صفات ذات حالا این کارکردش و کاربردش بیشتر توی حدیثه خدای نکرده یک کتاب حدیثی خوندید بعد مثلا یه حدیث که مرحوم کله این حرف و زد یا آقا مو که شده بود صفات فعل اونه که صفات ذات مثلا اراده جزء صفات بر اساس تعریف مشهور در که محدثین تعریف خاصی از صفت فعل اراده میدهند و اون همین بود که تاکنون بیانش شد صفت اراده بر مبنای تعریف اول صفت ذاته ولی بر اساس تعریف دهم صفت فعل است چون میتوان خداوند را به ذنش وسوسه نبود وملالو يريد ظلما للعباد سوره ملقه غافر آیه 31 و الله و انچنین نیست که خدا اراده کرده باشد ظلم را به بندگان و ما الله و یورید و ظلمن خدا و بندگان ظلم و اراده نکرده این را اگر بفهمید تا آخر حلی بس عدل دیگه همه یه حرف ها هم چرا به من ظلم نکرده یا کجا من مریض خرب کرده خدا چرا به من ظلم کرده؟ خب منو فقیر خب کرده خدا چرا؟ همه اینا که میید همه بحث تو همینه ولی که خدا ذاتش سا... سا... معذع از این نفهمی های بند شماست ما نفهمیم در ذات خدا و فعل خدا و الله خدا این چنین نیست و نبوده و نخواهد بود پس ببینید که ما توانستیم بر اساس تعریف دفعه یک معنای دیگه ای رو در های یک تقسیم بندی دیگه ای رو ارائه بدین این تاچ تقسیم بندی دیگه برای صفات ذات وجود داره صفات صبوتیه به صفات ذاتی و صفات فعلی تقسیم شدن حالا صفات ذاتی به دو بخش دیگه تقسیم میشه صفت ذاتی حقیقی و صفت ذاتی اضافی اینا چیه؟ یه مقدمه بگم یادآوریه قبلا گفتم ما در الفاظ یک لفظ جامد داریم که گفتیم از چیزی اشتقاق پیدا نمی کند ریختگری خودشه از جایی مشتق نمیشه. ولی یک دسته از الفاظ رو داریم که از یک ریشه ای گرفته میشه. اون ریشه رو اسمشو رو گذاشتیم مبدع اسمشو گفتیم اسم معنا و گفتیم از این مبدا یک چیزی چی میشه آقا اشتقاق پیدا میکنه میشه مشتق مشتق خب حالا من از شما سوال میکنم ولی خودم جواب میدم عالم مشتق است قطعا از چیزی اشتقاق پیدا کرده حتما از چی اشتقاق پیدا کرده از ریشه علم اون ریشه میشه مبدع معنا و این عالم میشه چیها موشتم زارب هم همین طور هست از ضرب مشتق شده قاتل هم همین طور هست از قتل حالا میگن چرا ضرب و شتم و قتل و نا ترسید اتفاق ویژه نیفتاده الفاظ معنوسه دیگه تو روزنامه بیشتر همین در قاتل هم از قتل مشتق شده قتل رو بهش بیان مب اسم معنی و بعد قاتل برش ساخته میشه و همینطور الفاظ حالا صفات ذاتی گاهی به صفات ذاتی حقیقی تقسیم میشن گاهی به صفات ذاتی اضافی تقسیم میشن صفات ذاتی حقیقی اون دست سفاتی هستند که ما اون مبدع رو در ذات داریم به عنوان وصف ولی صفات ذاتی حقیقی اضافی اون صفاتی هستند که ما اون مشتق رو در اون ذات داریم گاهی ما میگیم خدا علم دارد گاهی میگیم خدا چیه عالم است گاهی ما میگیم خدا عدل دارد گاهی میگیم خدا چی عادل است اگر از صفات ذات که معنای اول مشهور است در ذهنتون باشه ما بتوانیم مبدع رو به خدا اختصاص بدیم میشه صفت ذاتی چی؟ حقیقی اگر مشتق رو بهش اختصاص دادیم میشه و صفت ذاتی چی؟ اضافی و معنا رو شد دیگه حالا اگر ما زارب رو قاتل رو آوردیم اینها که در خدا اصلا ربطی نداره ولی فقط خواستیم که بگیم یه مبدعی وجود دارد و یه مشتقلی وجود داره برای اینکه ذهن شما به این معنا کشیده بشه خب صفت ذاتی که برای خدا در اون بحث قبلی گفتیم چیه؟ یکی از صفات حضرت حق چی هستش؟ علم دیگه صفت ذاتی حضرت حق چیه؟ علم درسته؟ چون شما وقتی میخواید علم رو انتزاع کنید جز ذات خدا تصور چیز دیگری لازم نیست حالا گاهی میگید الله علمون گاهی میگید الله عالمون یا الله علمون وقتی میگید الله علم است در واقع صفت ذاتی چی رو دارید کار میبرید؟ حقیقی وقتی میگید الله آلمون یا اللامون دارید صفت ذاتی چی رو کار میبرید؟ اضافی چون صفت ذاتی اضافی استعمال مشتق است در ذات عقدس اله و صفت ذاتی حقیقی استعمال مبدع است در ذات عقدس اله این هم در اینجا حالا یکی دیگر از صفات ذات عقدس اله قدرت وقتی شما میگید الله مقتدرون یا الله مثلا قدیر حالا قدیرم خودش مشتقه قدرت حالا قدرت رو کمتر در, در مورد خدا به کار ولی اگه قدرت رو در... به خدا استعمال کردی اولم اینم قدرت و قادریت صفت ذات یا صفت فعله ماریک داشتم رنگ میباختم صفت ذات صفت ذات حالا همین صفت ذات و وقتی به خدا مبدع رو اختصاص بیدید میشه صفت ذات فعل. حقیقی وقتی خود مشتق رو انتقال میدی و در واقع برش هم میکنه میشه صفت ذاتی چی آقا؟ اضافی احسن باریکلا یه واش واش ما رو امیدوار میکنید که ما چار مطورمون روشن میکنیم برای بحث کردم یعنی بگیم عرف که گفته نشده است انقدر مستمع آماده باشه خب من میدانم شما بحث تخصصیتونی عرفانی نیست شما متخصص در رشته های دیگه هستید ولی درک این مطلب حقایت از دو چیز میکنه یک اینکه که من خیلی عالی دارم میگم دو با اینکه که بازم من خیلی دارم عالی میگم و از ثبت است که شما هم خوب اومدید میدون و بسیار هم خوب اومدید میدون و این خیلی خوبه برای من های زحمیت پس این همه یه رو تقسیم بندی. صفت ذاتی حقیقی صفت ذاتی چی؟ اضافی همه اینا تقسیماتیش برای صفت صبوتیه صبوتیه بود که به ذات و فعل تقسیم میشد. بعد ذات تقسیم می به ذات حقیقی و ذات اضافی آنگاه صفت ذات حقیقی خودش به دو بخش تقسیم می شود. به چقدر صفات در مورد خدا اهمیت داره چقدر برای که ما بتوانیم درست درک کنیم این تقسیمات بوله اینه برای که من درست بفهمم خدا کجای کاره کجای کار از نظر علمی حالا کجای کار از نظر باور من اون به این, رب، این بحثا ربتون نداره ما مبکنیم بحثا رو بخونیم ولی خب خدا رو باور نکنیم این زمینی برای باور خواهد بود باور خدا به یک حقیقت برمیگرده همه همین حقیقت رو بارها گفتن ما تو ما جدی نگرفتی، به گناه نکردن اگه کسی بخواد خدا رو باور کنه راه شدی که گناه نکنه چون گناه مانع از درکه گناه به سال عفونت بیمونه وقتی بدن رو عفونت گرف فایده نداره هر چقدر که ویتامین بزنم فایده نداره میگه اول عفونت زدایی بکن بعد ویتامین تزریخ کن بعد تقلیت کن ما درون رو از پلیدی ها پاکش بکنیم حتی به وجودمون رو خشکش بکنیم از رطوبت گناه خارج بشه یک بارغه کافی است که ما را متصل به خدا بکنم یک بارغه نه استدلال یک بارقه یعنی یه جرقه نه که بیان براتون استدلال بکنم لذا بیشترین تعالیم دین ما بر رعایت چیه؟ تقوا ترک گناه چرقه به ما میگن تقوا تقوا تقوا چون تقوا مقدمه درک خداست مانع زدائیه ما نماز میخونیم ولی مانع تو وجودمون هست ما روزی میگیریم ولی مانع تو وجودمون هست اگه گناه کار نباشیم از صلاحات که مراج المؤمن پیغمبر بگی دیگه یا من رفتم صدرت المنتها حال تو که به صدرت المنتقه ها هیچ چیز موجود دیگه هم نمیرسی ولی خب براخره یه عروجی پیدا میکنه دیگه کزالی که نوری مرکوت از سماوات مرحز براخره یه عروجی پیدا میکنی ولی این عروجت کجاست در نماز خب چرا ما چهل سال نماز بکنیم و عروج پیدا نمیکنه. کنیم ساد و زادم که داریم درست میگیم که نمازمونم که سعی کردم که با یه مقدمات و معخراتی بخونم که ولی چرا اروج پیدانه کنه که اروج پیدا میکنن زندگیشون متفاوته نه زندگی از حیث مادیشون مثلا آدم که نه چیزی بارشونه نیفهمه هر ها خودشون رو به قوله یکی از بزرگان میفهم به این که اهل معنا خودشون رو به الدنگی میزنم و میزنن که مردم چیز نشن دنبال نکنن و اهل آنر این الدنگی رو گرفتن فکر بکنن که هر آدم که گوشه خیابونه مثلا سر پیت هستش و موهای جورد پولیده داره این مثلا فرض کنید که خیلی عارفه بابا اون یه چیز دیگه داره میگه اهل معناس الدنگی اهل اطلاف وقت نیستش که اهل اطلاف وقتی اهل درست زندگی لذا توصیه همه شخصیت ها برای رسیدن گناه نکردن ها همینه هزار سال دیگه هم هم گناه نکردن فرمول عوض نمیشه حالا صفت ذاتی صفت ذاتی حقیقی به دو بخش تقسیم میشه صفت ذاتی حقیقی محض صفت ذاتی حقیقی صفت ذاتی حقیقی ذات الاضافه یه خود دقت داره حقیقی محض ذات الاضافه صفت ذاتی حقیقی محض اون مبدعی است که فقط در ذات اقدس اله پیدا می شود ولا غیر در غیر خدا پیدا نمی شود صفتی که فقط در خدا پیدا می شود و در غیر خدا پیدا نمی شود یک صفت ذاتی باشد دو کدوم صفت حیات ما به تو قائم تو قائم به ذات ما حیاتمون به توه ما به تو قائم تو قائم این صفت ذاتی حقیقی چیها محض در غیر خدا نیست اگر در غیر خدا هست به خدا خداست و ذاتی حقیقی ذات الاضافه اون صفات ذاتی هستن که در غیر خدا هم پیدا نیشوند علم الله آلمون حسن آقا هم آلمون من تو بین علم همون ولی بالاخره حسنم هم آلمه دیگه اللہ قادرون مثلا شما هم قادرون یالا تایف نصفان که خیلی هم قدرت دارن دیگه. قادر. این قدرت و اون قدرت هر دو اما صفت قدرت هم در خدا یافت می شود هم در غیر خدا یافت می شود ولی صفت حیات فقط مخصوص به خداست اگر نازی کند لیلی فرو ری زند قالب یعنی ما که حیاتمون بسه به نیگری شقدر پر یعنی خدا شقدر شاخشون خدا چرا این کار رو نکنین خب نکن تحشیل دیگه جایگاه خودمون زشکیست نداد یه تقسیم منده دیگه برای سات تا اینجا که سخ نبود که نه. اگه سخت من تمامش کنم جلسه بعد بقیه‌شو میگم یه تقسیم بندی دیگه وجود داره تقسیم میکنن صفات ذات صفات الهی رو صفات ذات رو به صفات نفسی و صفات ذاتی به بخشی صفات اضافی صفت ذات رو به صفت نفسی و صفت چی اضافی اون دقت اینجاست اون بالایی خیلی سخت نبود ولی اینجا دقت داری دقت بفرمید گاهی صفت خود صفت روشن شدن معناش نیازی نداره که چیزی دیگه بهش تعلق بگیره به چیزی دیگه اضافه بشه خود این کلمه رو که نگاه میکنیم معنا چی آقا؟ روپشن صفت ذاتیه ولی برای ببینید تعبیر رو دقت بکنید ما در جاهای دیگه بگویدیم انتظا صفت نیاز به این دارد که چیزی رو لحاظ بکنیم یا نه انتظا برداشت ماست اما الان که بخوام میگیم صفت ذاتی نفسی و صفت ذاتی اضافی بخوام اینو بگیم اصلا روشن شدن خود متخورم اون صفت ربطی به انتزاع نداره اصلا ربطی به انتظاع نداره ما بخواهم 해�نیم که این معنا خود به خود روشن هست یا روشن نیست میگن اون صفت ذاتی که معنایش به خودی خود روشن است و برای روشن شدنش تعلق گرفتن به چیز دیگری را لازم نداره این صفت رو بهش میگن صفت ذاتی نفسی یعنی از درون خودش روب شنه. مثل حیات حیات اگه بخواید تصورش بکنید یعنی زنده بودن دیگه نیازه داری چیزی دیگه کنارش قرار بگیره اما برخی از صفات ذاتی هستند که برای روشن شدن معنا و مفهومش نیاز دارد که به یک چیزی چی بشن آقا؟ تعلق بگیرن اضافه به غیر بشن به خاطر همینو میگن صفات ذاتی اضافی مثلا خب علم صفت ذات هست یا نیست؟ بله. چرا؟ چون انتزاعش نیاز به غیر از تصور ذات؟ نه پس صفت ذاتیه درست رو حالا حالا که صفت ذاتیه صفت ذاتی نفسی یا صفت ذاتی اضافی است میگه آقا علم یعنی دانایی علم یعنی کاشفیت خب کاشفیت زمانی معنا پیدا میکنه که از یک چیزی کشفی حاصل شده باشد یعنی علم در کنار معلوم دانایی خب دانایی به چی تعلق میگیره دانایی به خودی خود که یه حقیقت نیست کاشفیت به خودی خود که یه حقیقت نیست باید به یه چیز تعلق بگیره که کشفش کرده باشه ادراکش کرده باشه پس باید اضافه بشه میشه صفت ذاتی چی اضافی خب قدرت جز صفات ذات است یا صفات فعله قاعده صفت ذات دیگه چون قدرت از ذات اقدس اله در واقع نیازی است که خدا کاری را انجام بده. اما همین صفت قدرت رو وقتی میخواید قدرت یعنی توانایی. توانایی کجا معناش در واقع مشهود میشود؟ که یه مقدوری در کنارش یعنی قادریت در کنار مقدور معنا پیدا میکنه. عالمیت در کنار معلوم معنا پیدا میکنه. وقتی این تقسیم بندی میشه تقسیم بندی چی؟ صفت ذاتی چی؟ اضافی یعنی برای روشن شدن معنایش لازم است که یک حقیقتی به اون تعلق پیدا بکنه و اون مبدع به یک معنای اضافه بشه اگر نیاز نبود اضافه بشود چه؟ که... بله میشه صفت ذاتی نفسی حالا ازلیت ازلیت یعنی از ابتدا بودن هر کی صفت ذاتیه که مسلم چون فرات تصورش فقط ذات اقدس اله حسابشه چون واجب وجود که فایت میکنه حال نفسی یا غیر نفسی ان اضافه نفسی بارک الله دادید اینجا دو دور اضافه میشه بهتون یعنی خوب بفهم دیگه یعنی این. یعنی که خوب بفهم خوبم هست منم خوشحال بشم پس صفت ذاتیه نفسی صفت ذاتی اضافی صفت نفسی صفت ذاتی حقیقی محض صفت ذاتی حقیقی چی ذات الاضافه صفت, صفت ذاتی حقیقی و صفت ذاتی اضافی اینا ملاکاش همه چی شد تا اینجا گفته شد یه برای که خیال و عزیزان رو رواای کنم آخرین تسنیم بندی در سفر. اینا همش روشن کنم. اینا صلاح صفات الهی بر مبنایی که بهتون گفتن تکلیف شب برای خودتون درست بکنید. خب اینا اوصاف الهی رو وقتی نگاه می کنید ببینید ذاتیه یا فعلیه. وقتی ذاتیه ببینید نفسیه یا مثلا فرض بفرمید اضافیه. ببینید ذات الاضافه است یا محض. اینا چیزایی که تکرارش در واقع شما رو معنوس به اسماء الهی بکنه اینا رو اگر دقت کردی در اسماء الهی حسام جلو اینا رو اگر دقت کردی آخرین تقسیم بندی آخرین تقسیم بندی که در صفات خدا وجود دارد ولی در بین اهل حدیث اعتبار داره و نه در بین متکلمین اما چون ما در بحث های کلامی از متون دینی هم استفاده می چون ما بحث های کلامیمون صرف حوزه عقل نیست ما در اون رؤوس مطالب از مستقلات اقلیه استفاده می کنیم. یعنی صرف استدال های رو بیان می کنیم. ولی در یک جاها و در یک حوضها ای که عقل راه نداره از کمک عقل و متون دینی استفاده می‌کنیم، بنابراین این تقسیم بندی برموان لازمه اول در استدلانها ای که علاوی بر عقل از متون دینی هم استفاده میکنیم مستقلات غیرعقلیه مستقلات عقلیه عقلی این که فقط از متون یعنی فقط به عقل استفاده میشه مستقلات غیرعقلیه این که علاوی بر عقل از یک مثل دینی از یک روایتی از یک ای هم بهره میبینید در اون استدلال بیشتر استدلال های ما باید هم مستقلات خیلی عقلیه باشید بلد بشید استفاده بکنید انشاءالله یادش میگیدید می توی مواسه مناظره تو مواسه مناظره تو مواسه مناظره تو مواسه مناظره به شما هزاقت در واقع بکارگیری استدلال رو میدن هزاقت بکارگیری چی رو استدنام خب این هزاقت یادتون باشد جلسه بعد یه چیزی را راجبش بگم آره جلسه بعد بگم این جلسه آیان اهل حدیث میگن صفات به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش از صفات الهی صفات خبری است. و صفات خبری اون دسته از اوصافی هستند که یک به حکم عقل و به مقتضای عقل نمیتوان برای خدا چنین صفتی را قبول کرد. دو در مطل دین این صفت اخبار شده است و حکایت شده است و مراد اون از مطل دین قرآن است و بله روایات به خودی خود با حکم عقل که نگاه این صفت نمیتونی به خدا هم بکنی ولی در قرآن آمده ولی در قرآن آمده رسابه میگن صفت صفت چی ها خبری است و عقلی نیست صفت خبری هست بنابراین صفت خبریه از این جهت که به حکم عقل نمیتوانی صفت رو به خداوند وصف کرد و توصیف کرد لازال وقتی شما به محضر اون صفت میرسید اون صفت را به معنای ظاهریش نمیتوانید حمل کنید چون معنای ظاهریش مطابق مخالف حکم عقله و حضرت حقم که مخالف عقل حرف نمیزند چون حکیم، عقل محزه بنابراین چون مخالف عقل حرف نمیزند پس اگر این مطلب را فرموده است منایش و مرادش چیز دیگه خود اینو میدونید من به چهار آیه اشاره میکنم. لستونیم رو که فت آیه ده یدالله فوق برای خدا چه صفتی قائله؟ دست خدا که دست اگه در قرآن نیامده بود که ما اصلا نمیتونسته بگیم خدا دست داریم در قرآن آمد من میگه یدالله فوق حیدی این رو چیگن صفات چی آقا؟ به مقتضای عقل این صفت بر خداوند اتصاف پیدا نمیکنه چرا؟ چون لازمش این است که خداوند شبیه مخلوقات میشه و خداوند منزه از مخلوقات لیست که مثل بنابراین وقتی میگه یدالله فوق عیدی هم باید یاد را بر یک معنای دیگری خلاف ظاهرش حمل بکنیم تا معنا، معنای درستی در بیان میگه ید مظهر قدرته مظهر قدرته ید در انسان مظهر چیه؟ مظهر قدرت دیگه اعمال قدرت انسان از بواصل دست چه؟ یکی از یکی از درواقع رحمت‌های حضرت حق بر انسان است که دست انسان آزاده. یعنی واسط چهار قلم خاصم بهم نمیجوش دستمون آزاد نبود قدرت نداشتیم. دست انسان که آزاده مظهر قدرت بشه. حالا تو این مظهر قدرت زود خیر یارو میگیره دیگه من نمیدونم. ولی نذاشتن که این کارو بکنه. ولی مظهر قدرته. من میگیم ید الله فوق یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت‌هاس به مزریت اون در واقع وسط باید دقت کرد نه به خود اون خدا که دست نداده که گرچه دیگر هم مین خدا دست داره در ادیان که اصلا اونا شاهکارن که خدا میاد و کشتی میگیره و در مذهب دیگر هم که مثلا حالا میگن مثلا خدا شباه جمعه سوار چهار پا میشه بعد میاد آسونه هفتم میاد آسونه اول و اصاشون میگیره دستشو و می رو خونشو و کچه بار تنشو میگن خب دیالا. وقتی از در خانه علی رفتی دیگه هیچ نداری برای گفتن مگرین که لاتا لات رو بگی و بگی نه اعتقاداتو خب اعتقاداتو نه نشی کارتون کارتو نه دست سوری مبرای قصص آیه هشتاد و هشت کلو حالک هر چیزی به فنا میرود الا وجهه مگر صورتش می خدا صورت داره خدا صورت نداره دستوری مورد که تاهای پنج الرحمن الرشستو همان بخشندهی که بر عرش مسلطه عرش خدا عرش داره عرش خدا چیه به چه معنایه کرسی خدا به چه معنایه کرسی سندلیه خدا رو صندلی میشینه یا این گرسیه هست که شما زمستون آه، چیه قضیه هست خود که نداره ایجا که اینا صفات چی هستن خبریه بنابراین ما همین جوری لحاظش بکنیم برای به خلاف ظاهر ترجمهش بکنیم و تفسیرش بکنیم و سوره مبارکه فجر آیه بیست و دو جا عرب که خدا آمد از آمدن خدا خبر میده خدا رو خجر نبودی که بیاد ایننما توالو فسم هر جا که بری خدا هست کجا آمد آمد یعنی که نبوده پس جا عرب چیه چی وقتی کسی میاد یعنی چی در اون مکان نبوده پس ایننما توالو فسم وجه الله هر تلاقی برمی‌گاد خدا که هست بنابراین شما حق نداری که آیه رو هر که دلت بخواد تفسیر کنی خدا آمد خبر از آمدن خدا میده خبر از تسلط حضرت حق بر عرش بوده الرحمان على ال تسلط بر ارش پیدا کرد این چه معنی اون یه؟ اینا اگر در متون دینی ما که من قرآن خون حالا روایات رو نمی در این زمینه نیازی نداره که در هم چهار تا کافیه دیگه اینا در متون دینی ما نمیاد و من به خدا نسبتش بدین اصلا این نسبت دادن خود به خدا این صفات را به معنای ظاهریش که خلاف عقل که بنابراین اگه خدا به خودش نسبت داده یک و خبر داده دو پس باید بر خلاف ظاهرش هم کرد تا بتوانیم یک معنای محسری ازش پیدا بکنیم. خب در مقابل صفات خبری صفات ذاتیه یعنی اون صفاتی که ذات خداوند اقتضایی همچین در واقع اتصافی رو داره حالا هم منزی که صفت فعل باشد یا صفت چی باشه؟ اصلا ذاتن چنین اقتضایی برای چنین اتصافی وجود داره جو مشکلی وجود نداره، محالی وجود نداره اما در صفات خبریه ذاتن چنین اقتضایی وجود نداره خدا دست نداره برادرها، خدا پا نداره ازن الله یاد الله اینا گوش خدا اینه چیه داریم میگین؟ خیلی اگه تو روایت نمیده بود که ما نبتونستی به خدا نسبتش بدیم که ذات حضرت حق مجرد از جمیع آلودگی های مادی و مادی گرایی و مادیات هست و ما داریم میگیم در واقع ددالله اوزنالله رجلالله این همه هم ما داریم به خدا نسبت بدیم ذاتش اقتضا نمیکنه خبره بنابراین ما حق نداریم که بر معنای شد در واقع حملش بکنیم باید برای یک معنای دیگری که باعث بشه ما بحث عصیب بکنیم صفات خدا بکنیم. ما مجبوریم از صفات خدا برای که حالا چرا مجبوریم دلیل و شده که ما باید خدا رو بشنسیم. خدا رو بشتنسیم تو بحث اصلی شناسی تو بحث خداشناسی خدا شناسی گفتیم. به چهار دلیل ما باید خدا رو بشناسیم یکی شکر ام یکی کی و سه دریل دیگه ای که گفتین ما باید بشناسیم حالا می‌خوایم بشناسیم خدا رو از چی جایی می‌تونن بشناسید خدا رو از چند طریق میشه شناخت؟ یکی از طریق ذاتش من شما رو از چند طریق میتونم بشناسم؟ یک از طریق ذاتتون رو بشناسم برای که به ذاتتون در واقع راه پیدا بکنم که ببینم ذاتتون خوبه یا خرابه خوبی این لازم معانست داره دیگه ما دا هم همنشین شما باشیم با هم یه سفر بریم و هم مثلا فرض کنیم تجارت بکنه دمیدونم چون با ذاتت سالمی یا ذاتت خراب دیگم چیزی لازم دیگه اما با خدا میشه از طریق ذات شناخت پیدا کرد نه نیمیشه چرا؟ از طریق ذات مهار از که به شناخت به خدا برسی به چه دلیل؟ چو در های قبلی در جای خودش اثبات کردیم ذات اقدس اله واجب الوجود من جمیع الجهات است و چنین موجودیتی موجود بینهایت است این یک و در انسان شناسی اثبات شده که ما مخلوقیم و مخلوق موجود چی آقا محدوده او نامحدود است و ما محدود اینم دومین رتبه در واقع مقدم استدلان سومین مقدم استدلال اگر من میخوام به چیزی علم پیدا بکنم یعنی من به عنوان شناسا من به عنوان فائل من به عنوان مدرک باید با اون حقیقت نوعی رابطه برقرار کنم یعنی یعاته بهش پیدا بکنم من وقتی به این کتاب احاته پیدا می میگم این کتاب قرآنه وقتی به این حقیقت احاته پیدا می میگم این حقیقت ساعته وقتی به اون حقیقت احاته پیدا می کنم میگم اون حقیقت چیه الگلانه به حقایق وقتی احاته پیدا کنم در واقع ابراز شناخت می کنم میگم شناخته. پس علم پیدا کردن یعنی نوعی رابطه پیدا شدن بین مدرک اون فائل اون عالم و اون معلوم مدرک حالا اگر بین من و ذات و خدا بخواد یک همچین رابطه برقرار بشود اصلا این برقرار نمیشه چون من محدودم و او نامحدود او اصلا در هیته من نمیاد تو من بخوام هم بشناسمش چرا در هیته من نمیاد چون او واجب الوجوده و اگر واجب الوجود نباشد محال است که بهش در واقع, تسل، تسل در واقع حقیقتی پیدا بشه اگر واجب الوجود نباشد چون علت الاله توجه فرمودی برابر علم به ذات که مطلقا پیدا نمیشه طریق ذات خدا که علم پیدا نمیشه به ما در روایات دستود بابا نمیخواد به ذات خدا فکر بکنی هرچی به ذات خدا فکر بکنی بیشتر متحیر میشی یعنی بیشتر بیچاره میشی هر میشه در بدبق میشه. میفهمی که هیچی نیستی وزنی نداری بنابراین میمونه راه دیگر که حالا اون راه دیگر در قرآن کریم هم در سوی مواقع تاهای صد و ده همین معنا که به ذات نمیشه علم پیدا کرد هرگز هرگز بر ذات خداوند آگاهی پیدا نمی کنید چرا؟ چون اصلا دستلس خارجه اصلا دستلس خارجه چون اون ناموت و ما مونت و علم یعنی ارتباط بین مدرک و مدرک عالم و معلوم خدا هم بخواد معلوم و ما خراب بگیره باید ما باش ارتباط و آته پیدا بکنیم محدود چجوری میتونه بر نامحدود آته پیدا کنه نمیشه لذا رسول گرامی فرمود با همه يدو بيزاش ما عرفنا کق اصلا ابدا نمیشه کار که ما که دیگه آنجا که اوقا پربرزت دیگه از ما هیچی نخیزن خب این همه از این تا بعد جلسه بعد ببینیم که حضرت حق چه اراد کرده است الحمدل